روی خط کودکی با رادیو خط خطی شاهنامه به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان از رادیو خط خطی به نام خداوند جان و خرد کزیم بر تر اندیشه بر نگذرد درود بر شما دوستای خوب راژیو خطختی از امروز در خط خطختی قرار داستانهای شاهنامه رو بشنوید در قسمت اول دوست داریم که کمی از فردوسی خالق این اثر بزرگ و موندگار براتون صحبت کنیم و از هفته بعد داستانهای جذابش رو با هم خواهیم شنید. حکیم عبالغاسم فردوسی میگن در حوالی سال 329 هجری در حوالی شهر توس به دنیا اومده احتمالا بچههایی که برای زیارت مشهد رفته باشن سری به توس زدن و آرامگاه فردوسی رو دیدن همون اطراف توس هست پدر فردوسی دهقان بوده میگن که اوضاع مالی و اوضاع زندگیشون خوب بوده. برای همین از دوران جوانی وقتی علاقه پیدا میکنه به داستانهای اساطیری ایران شروع میکنه به منظوم کردن شاهنامه. منظوم کردن یعنی به نظم درآوردن نظم چیه؟ همون میگن نظم و نصر یعنی به صورت شعر درآورده. اینها افسانه هایی بوده، تاریخ هایی بوده، اینا رو همه رو به صورت شعر در کتاب بزرگی به نام شاهنامه جمع کرده ببینید بچه ها هویت ایرانی و زبان فارسی زنده شدن دوباره خودش رو در هزار سال پیش مدیون حکیم ابوالقاسم فردوسیه همیشه به نقل از خود جناب فردوسی میگن بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدیم پارسی سی سال طول کشیده که شاه رو به صورت شعر یعنی منظوم در بیاره اگه فردوسی نبود واقعا معلوم نبود که چه بلایی سر این زبان فارسی میاد ملت ها با جمعوری و تدوین افسانه‌ها، داستان‌ها و وقایع تاریخی خودشون هویت ملیشون رو موندگار میکنن فردوسی این کارو برامون کرد. خودشم میگه از آن پس ایرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام، هر آن کس که داورد هوش و رأی و دین پس از مرگ بر من کند. آفرین، واقعا آفرین به فردوسی ششتد هزار بیت شعر از تاریخ و از هویت ایرانی ما سروده خیلیا میگن که شاهنامه رو برای سلطان محمود قزنوی سروده بوده ولی همونطور که گفتم در جوانی به خاطر علاقه خودش شروع به کار میکنه و از اونجایی که دیگه اوضاع مالیش کمی به هم میریزه تصمیم میگیره که بره شاهنامه رو تقدیم کنه به سلطان محمود میگن که سلطان محمود اونقدر تحویل نمیگیره فردوسی رو و میگه که این چیه برای من آوردی رستم رستم رستم از اول تا آخرش رستمه که حتی میگن سلطان محمود شاهنامه رو بیارزش دونسته و از رستم به زشتی یاد کرده خشبی میشه و سر فردوسی داد میکشه میگه که شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چو رستم هست میگه چی از اول تا آخر هی گفتی رستم رستم رستم من تو همین سپاه خودم هزاران هزار از این رستما دارم میگن که فردوسی از این حرفای سلطان محمود ناراحت میشه و قزنه این رو ترک میکنه بعد از ترک قزنین تو چند شهر مثل هرات و ری و تبرستان بوده و اینکه بالاخره برمیگرده به توز و همونجا فوت میکنه. تاریخ وفاتش هم حدودن میگن 411 تا 416 هجری قمری بوده. یه داستانی هم هست که میگن سلطان محمود یکی از دلایلی که زیاد تحویل نگرفته شاهنامه رو و فردوسی رو قبول نکرده بابت حسادت شاعران درباری بوده یه سری شاعر بودن تو دربار سلطان محمود که شروع می‌کردن به بهبه و چه که بابا تو چقدر جنگجویی تو چقدر خوبی تو چقدر جای مختلف دنیا رو گرفتی هندو گرفتی اینو رو گرفتی اون ور رو گرفتی ولی این کتاب فردوس که میاد شایران میرن میگن آقا این چیه؟ هیچی درمده شما ننوشته همهش رستم رستم رستم کرده به شما نمیخوره سلطان محمود بعد از چند سال میگه که ای بابا کتابش بدم نبودم من چرا این کارو کردم؟ چرا فردوسی رو نپذیرفتم؟ چرا شاهنامش رو قبول نکردم؟ چرا به هیچ انعامی چیزی ندادم که از اون اوضاع بد مالی رهایی پیدا کنه؟ برای همین میگن که برای اینکه دلجویی بکنه از فردوسی براش یک کاروانی از پول و سکه و اینجور چیزا براش میفرسته که میگن وقتی داخل توس میشده این کاروان که بره در خونه فردوسی برسه از دروازه دیگه شهر جنازه فردوسی رو میبرن بیرون و هیچ وقت حاصل دسترنج خودش رو از سلطان محمود نمیگیره ولی حاصل دسترنجش از, از حدود هزار سال به دست ما رسیده از وظیفه ماست که حفظش کنیم برای اکثر ما مردمایی که به ندرت کتاب میخونیم خوندن ش هزار بچه از این شاهکار ادبی جهانی خب متاسفانه مشكله اومدن دوستان بسیاری نویسندگان بزرگی روایت های شاهنامه رو به صورت نثر یعنی از حالت شعر درش آوردن که راحت تر ما درکش کنیم به خصوص برای شماهایی که خب سنتون کمتره کلمات قلمبسلنبی داره توی شاهنامه فعلا شما برای اینکه با داستان ها آشنا بشید ما این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم ولی بزرگتر که شدید مطمئناً می‌رید و شعر های اصلی شاهنامه رو و واقعاً می‌فهمید که چیا گفته شاهنامه اون وزین بودن شاهنامه رو باید درک کنید با خوندن شعر یه بزرگ نویسنده این نوشته بود شاهنامه داستان شاهان نیست مجموعه کارنامه هاست که داستان پدران توست و اینکه چطور زنده بودن چگونه جنگیدن برای پیروزی حق چگونه قیام کردن چگونه از طبیعت آموختن و چگونه اون رام کردن چطور با جون و تنشون این سرزمین رو کردند. چگونه پیروه راستی و ایمان به خداوند بودند و این همون میراثیه که امروز به دست تو سپرده شده به دستش تو خب بچه این قسمت اول برنامه ما بود و میخواستیم که بیشتر در مورد فردوسی اطلاعات پیدا کنیم. از قسمت بعدی داستانهای شاهنامه رو شروع میکنیم مطمئنم که خیلی خوشتون خواهد اومد منتظر ما در هفته بعد در همین برنامه باشید خدافظ دوستان رادیو خطختی قصه فرزاد شیر محمدی به سفارش انتشارات خط خطی.